بسم الله الرحمن الرحیم در باب کتاب میراث متن عبی شجا بودیم کتاب الارثش یا همون کتاب فرائزش سهم های مشخص شده صاحبان فرض رو توضیح می دادیم که از راه سهمی ارث می بردن تا رسیدیم به یک ششون یعنی ما تا اینجای کار یک دووم، یک چهارم، یک هشتوم، دو سوم و یک سوم رو توضیح دادیم که سهم چه کسانیست است امروز ان شاء الله می‌خونیم با و سو فرض و یک ششم سهم هفت گروه است یک الام مع الولد او ولد القبل یک مادر مادر چه زمانی یک ششم میبرد؟ زمانی که میت فرزند یا فرزند پسر داشته باشه مانند که شخص فوت میکنه مادر داره با پسر مادر یک شیشو میبره پسرش باقی مانده رو و اثنین فصائدا من الاخوهتی والاخوات همچنین مادر یک شیشو میبره زمانی که میت دو برادر یا دو خواهر یا بیش از دو تا داشته باشه اثنین فصائدا دو و بیشتر دو و بیشتر داشته باشد میت برادر یا خواهر در این حالت هم مادر یک شیشم میبره فرزن شخص فوت کرده سه برادر داره و مادر خب مادر یک شیشم رو میبره باقی ماندر رو سه برادر میبرند بله به شکل مصافی پس مادر یک شیشم میبر زمانی که میت فر پسر فرزند داشته باشه یا فرزند پسر داشته باشه و همچون این زمانی که دو خواهر یا دو برادر یا مجموعشون داشته باشه و یا بیشتر از دوتا فرقی نمیکنه کنه موقعی که با دوتا دیگه یک شیشم میبره با بیشترش هم یک شیشون میبره سه دو دومین گروه که یک شیشون میبرن و هو للجدتی عدم الامی سهمیه جده هم یک ششم است به هنگام نبود مادر چون اگه مادر باشه دیگه هیچ مادر بزرگی ارث نمیبره بله پس مادر بزرگ هم سهمش یک ششم شخص فوت کرده مادر بزرگ داره با یک برادر فرزن میگم مادر بزرگ مثال مادر بزرگ میبره یک ششم برادر هم میبره باقی ماندرون سه و لبنت الابنی مع بنت سلبی سو من گروهی که یک شیشو میبرد دختر پسر زمانی که میت خودش دختر اصلی داشته باشه دختر خودشو داشته باشه مستقیمن بله فرزن فوت کرده دختر داره یک دختر پسر داره و پدر داره دختر پسر یک دوم دختر خود میت یک دوم مالو میبره دختر پسر میت که الان اون پسر فوت کرده باش البته شرطش اینه ها دختر پسر یک شیشوه میبره پدر باقی مانده را بله چهار و هوا من می مع معختی من ی و ععم چارین گروهی که یک شیشم میبره خواهر پدری میت زمانی که میت خواهر پدر و مادری داشته باشه زمانی که خواهر شقیقه داشته باشه فرزن میت فوت کرده یک خاهر شقیقه داره پدر و مادری و یک خاهر پدری و یک امو، خاهر پدر و مادری یک تو میبره، خاهر پدری یک ششمو میبره، و امو باقی من داره. پنج، پنج من گروهی که یک ششم میبره، و هو فرض الاب مع الولدی او ولد الابنی سهمیه پدر یک ششم است زمانی که میت فرزند داشته باشد یا فرزنده پسر داشته باشد در این حالت هم میت یک شیشم میبره فرزن شخص فوت کرده پدر دارد با پسر خب پدر یک شیشم مالو میبره پسر باقی مانده رو شیش و فرز الجدی اندعا دمیل ابی سهمیه پدر بزرگ هنگام نبوده پدر هم یک شیشم است شخص فوت کرده پدر بزرگ داره با پسر پدر بزرگ میبره یک شیشم و باقی مانده رو پسر میبره هفت هفتمین گروهی که یک ارث ارس میبرد و هو فرد الواحدی من ولد الامی فرزند مادر ولد مادر چه پسر باشه چه دختر فرقی نمی کنه برادر مادری یا خواهر مادری بقولی. سهمش یک شیشم از زمانی که یک نفر باشد. بله. شخص فوت کرده یک برادر مادری داره. خب اینجا که برادر مادری داره، برادر مادری، یک, ش... یک ب... یک برادر, مادری برادر مادری یک یک برادر مادری داره به اضاف یک میگیم برادر مادری یک یک رو میبره امو باقی مانده رو خواهر هم اگه داشت فرقی نمیکنه شخص فوت کرده یک خواهر مادری داره یعنی از طرف مادر فقط خواهرش میه خواهر میته <تصفح> فرزن یک امو داره میگیم خواهر مادری یک رو میبره باقی مانده رو امو ما مثالای خیلی ساده ذکر کردیم ما بخاطر فهم وگر نمیشه افرادی دیگه رو ذکر کرد پس اینایی که یک شیشوم مالون میبردند هفت گروه بودن. البته شرایطشون شر... باید بدونیم که چه زمان ارث میبرند چه زمان ارث نمیبرند جلوتر هم اشاره میکنه در میل قسمت بعد بحث بعدی همینه خب مادر و دو شرطی که گفت مادر بزرگ هنگامی نبوده مادر دختر پسر همراه با دختر اصلی ویت چهار خواهر پدری همراه با خواهر شقیقه پنج سهمیه پدر زمانی که فرزند یا فرزند پسر داشته باشد میت شیش فرزند شیش پدر بزرگ، هنگام نبوده پدر، هفت خواهر یا برادر مادری، زمانی که یک نفر باشه. و تسقط قتل جداتو و والأجدادو بالأبی ساقط می شوند مادر بزرگ ها با مادر. اگر میت مادر داشته باشه، مادر بزرگ های میت ارث نمی برند. فرقی نمی چون مادر بزرگ پدری باشه، چی مادری، دیگه ارث نمی برند. شخص فوت کرده مادر داره با مادر بزرگ پدری رو به اضافه یک برادر خب مادر یک شیشو میبره برادر باقی مانده رو میبره مادر بزرگ پدری نمیبره چون مادر زنده است مادر بزرگی دیگه ارس نمیبره و اجداد و بالعب. اجداد هم پدر بزرگ ها ساقط میشن با پدر البته پدر بزرگ ها خود پدری ها چون پدر بزرگای مادری ارث نمی برد یعنی ماد، پدر مادر ارث نمی برد پدر مادر میت ارث نمی برد بر, خ... بر ایکس مادر بزرگ مادری مادر بزرگ مادری می بره ولی پدر بزرگ نه خب و یا سقعت ولد الامی مع اربعت و ساقت فرزند مادر با چهار گروه فرزند مادر یا به عبارتی برادر و خواهر مادری برادر و خواهر مادری با وجود 4 ساقط میشه یعنی ارث نمیبره محجوب میشه یک الولد میت فرزند داشته باشه دو ولد الاب فرزند پسر داشته باشه سه والاب پدر داشته باشه چار وال جد بزرگ داشته باشه با این 4 کس که میت داشته باشه دیگه برادر و خواهر مادری ارث نمیبره ویسقط يسقط الاخ للابي والامي مع ثلاثه برادر پدر و مادری برادر شقیق میت هم با سه کس یا با وجود سه کس سه شخص سه گروه از ارث ساقط میشه یک الابن و ابن الابل والاب یک با وجود پسر دو با وجود پسر پسر سه با وجود پدر با وجود این سه شخص برادر پدر و مادری یعنی برادر شقیق از ارث ساقط میشه اما برادر پدری چیه؟ ولد الاب به هؤلاء الثلاثه وبالاخي و والام برادر پدری با این سه شخص که نام برده شدن ساقط میشه اضافه بر این سه نفر با برادر پدر و مادری هم ساقط میشه پس برادر پدری با پسر میت، با پسر پسر میت، با پدر میت و با برادر شقیق میت ساقط میشه. ارس نمیبره برادر پدری. برادر مادری رو که اول توضیح داد. اینجا برادر پدر و مادری رو توضیح داد. بعدش هم برادر پدری رو توضیح داد. و اربعتن و یعصبون اخواتهم. چار گروه هستند که خواهران خود را عصبه می کنند یعنی خواهر جز زوی الفروز بود ما دیگه خوندیم سه مشخص بود یک دوم و دو سه وم در بعضی حالت یک شیشون بود آه؟ چار شخص هستند که خواهران خود را عصبه می کنند یعنی دی اون موقع از راه از راه سهم مشخص ارث نمیبرند از راه عصبه بودن ارث میبرند که برادر دو برابر خواهرش ارث میبره یک ال ابر پسر مایهت خواهرشو عصبه میکنه شخص فوت کرد یک پسر داشت با یک دختر دیگه اینجا دختر از راه زوال فروض بودن از راه سهم مشخص سهم تعیین شده ارث نمیبره بلکه عصبه میشه برادرش دو برابر خودش میبره فرزن یک برای پسر داره یک دختر مالش سه میلیون هست دو میلیون میبره پسر یکیش رو میبره دختر مال. پس چار گروه هستن که خواهران خود را عصبه میکنند یکی پسر پسر امیت خوهرش رو عصبه میکنه دو ابلال ابل پسر پسر شخص فوت کرده یک پسر پسر داره و یک دختر پسر اینجا پسر پسر دختر پسر را که خواهرشه، عصبه میکنه در میراست این نقطه رو بدونیم زمانی که شخصی به وسیله یک شخصی دیگر به میت وسیل میشه تا زمانی که اون واسط زنده باشه اون دیگری عرص نمیبره اصلا تا زمانی که پدر زنده است پدر بزرگ عرص نمیبره تا پسر زنده است دیگه پسرش عرص نمیبره بله جلوتر. پس چهار که خواهرانشونو عصبی میکنن یک پسر دو پسر پسر سه و الاخ من الابی و الام برادر پدر و مادری شخص فوت کرده یک برادر داره پدر و مادری با یک خواهر پدر و مادری اینجا برادر خواهرشو عصبی میکنه و دو برابرش ارث میبره چهار برادر پدری و الاخ من الابی برادر پدری برادر پدری خواهر پدری رو اصبه میکنه عصبی اصبه می... میکنه تو باید دقت داشت که برادر پدری خوهرشو اصبه میکنه اما خواهر شقیقه من یه تو نمیکنه مثلا فرزن شخص فوت کرده یک خواهر شقیقه داره به اضافه یک برادر پدری اینجا خوهر شقیقه یک دوم مالو میبره چون کسی نیست که عصبش بکنه و برادر پدری معید باقی مندر رو میبره به عنوان عصبه پس این چهار گروه خوهرهای خود رو عصب عصبی می کردن پسر، پسر پسر، برادر, پسر، برادر پدر و مادری و برادر پدری خوهرهای خود رو عصبی می کنن و اربعه تون اینا رو میگن عصب خود این افراد میگن اصبه به نفس خاهران میگن اصبه به غیر آبا کسی دیگه اصبه شدند کسی دیگه اون را اصبه کرده البته اصبه ما غیر داریم که اینجا شاره نمی کنیم و اربعتون یارثون دون اخواتهم چهار گروه هستند که خودشون ارث میبرند اما خاهرانشون نمیبرند و اربعتون یارثون دون اخواتهم سار گروه هستند که عرص میبرند بدون خاهرانشون و هم و اینها عبارتند از یک اموها شخص فوت کرده امو داره و امه داره یه فقط امو عرص میبره دو بنو الاعمام پسران امو اگر امو هم پسر داشته باشه هم دختر فقط پسران میبرند سه بنو اخی فرزندان برادر شخص فوت کرده برادری داشته اون برادر فوت کرده حالا اون پسر هم داره دختر داره اینجا فقط پسران حرس میبرند دیگه دختران نمیبرند پس ف... فرزندان برادر پسران برادر خواهرانشون رو عصبه نمی کنند. و چهارمین و آخرین گروهی که خودشون میبرند اما خاهرانشون نه عصبه های مولای موتق هستند آزاد کننده آزاد کننده اگر یک پسر داشت با یک دختر فقط پسرش قسم میبره. دیگه خواهرش رو عصبه نمیکن <تصفح> <تصفح> <تصفح> بله. پس این چهار گروه عمون پسران عمو یک امو، دو پسران امو، سه پسران برادر، چهار اصبه به نفسهای آزاد کننده. شخصی برده بوده کسی او را آزاد کرده. ها؟ اون آزاد شونده هیچ بری نداره. خود آزاد کننده فوت کرده. یک پسر داره و یک دختر. اینجا دیگه پسر ارث می‌بره، اما خوهرشو عصبه نمی کنه باید فصلون فصل بعدی الوصية الجائزة الوصية الجائزة فس لبادين ميقى الوصية الجائزة وصية جائزة وصية جائز اگر قفتبود الوصية جائزة خب مفتضى وخبر مشون انجا ميخات بقك كدو وصية جائزة است الوسیت الجائزه فصل بعدی در مورد وسیت جائزه هست اون وسیتی که جائزه هست و تجوز الوسیتو بالمعلومی والمجهود و جائزه هست وسیت کردن به چیز معلوم و مجهول. مانند اینکه که شخص مجهول مانند اینکه که شخص وصیت کنه به لباسی نامعلوم یه چیز نامعلومی تا این نشنه نکنه آن معین نباشه و الموجود و المعدوم و به چیز موجود و چیز معدوم مثالی که دیبل بغا تو کتابش آورده ماننده این شخص وصیت کنه به ای که این درخت خواهد داد هنوز معدومه دیگه بله پس جایز است وصیت به چیز معلوم و مجهول کما لو اوصا بثوب غیر معیل ماننده این که وسیعت کنه به تا تعیین نشده نامشخص پس جایزت وصیت به چیز معلوم و مجهول موجود و معدون چیزی که الان موجوده و چیزی که هنوز موجود نیست و هی من الثلث و وسیعت است از یک سفوم یک سفوم ماده میلیارد داره از یک میلیارد شکمتر فا این زاد اگر وسیعت بیشتر از یک سوم مال بود مقفه على اجازت الورفه متوقف بر اجازه وارسان هست چون حق حق اوناست اونای که شریعت تایم کرده که ارس میبرند متوقف بر اجازه اوناست ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة جائز ليست وصية براي وارث لا وصية لوارث نجي بس وصية براي وارث جائز ليست كسيقك خودش ارث براي جائز نیست که میث بياد برأي وارث وصية إلا أن يجيزها باقي الوارثة مغيرين ما كباقي ماندي وارثان إنو إجازبت إجراش كنت قبولش كنت وتصح الوصية من كل بالغ عاقل صحيح السوصيات السمج هر شخص بالق وآقل لكل متملك براي هر شخص متملك متملك يعني شخصي كملكيات براي اوه حتى تصور متصور باشه واختي ميت واسیت کننده میمیره ملک براش متصور باش. پس واسیت صحیح نیست برای یک مثلا چارها چون این متمالک نیست واسیت صحیح هست برای هر متمالک ای لمن میو له لهو الملک انجوری شرحش دادن شرحی برای کسی که ملکیت برای او است تصور است تصور میشه وفی سبیل الله و در راه خداوند سبحان. بای در جهتی عمومی بیاد واسیت بکنه در مسجد برای چیز عمومی خواب وتصيح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصالات، وصحيح الوصيات براي كسيكيم پنچ خصالت رو دارت پنچ ويجي وخصوصيات رو دارت يك الاسلام مسلمان باشد والبلوغ بالغ باشد والعقل عاقل داشت باشد والحريه اعزاد باشد والأمانه این شماره پنجش هست پانجش هست کمی مشکل چاپی داره امانه امین بودن پس و تصح الوصیتو الى من اجتمعت فیه خمسو خصال و صحیح هست وصیت کسی که پانج خسلت درو جمع باشد منظور میشه او رو وسی قرار داد ببینید اینجا سه مسئله هست یکی واسیت کننده وصیت کننده باعاقل و بالغ باشه و اتصیح من کلی بالغ اقلیم که جمش ماد صحیح از وصیت از هر باغل و آاقی لی کل متملکن برای هر کسی که امکان ملکیت دارد؟ يعني براي كسي كإمكان ملكيات براش متصورة است سنبراي حاربا جائز نبود وفي سبيل الله مش مش وسياد كارت في سبيل الله مالش در جهاد يا در مساجد اي چيزي في سبيل الله باشي ودر آخر مجي وتصح الوسيط الى من اجتمعت فيه خمسو حصال والسهي الوصيات وسياد بسوية كسي ك پان شرط درش آآ جمع شده باشد میشه اونو وسی قرار داد بله. اسم مسلمان بودن بالغ بودن عاقل بودن آزاده بودن و امین بودن این پنج شرطو داشته باشه میشه وسی قرارش داد خب وسی که هست؟ وسی اون کسی هست که شخص تعیینش میکنه برای حفظ و تصرف مالش و حفظ و نگهداری از فرزندان بعد از مرگ اینو میگن وسی شخص اونو به عنوان وسی تعیین میکنه نگهدارنده فرزندان و مالش باشه بعد از خودش بالا. این پن شرط رو باید داشته باشه اسلام، بلوغ، عقل، آزادگی و امانت داری